داستان پانزده چپی یا راستی اتاق بیمارستان سه تخت داشت یکی از تخت ها خالی بود روی یکی دیگر جوانی خوابیده بود که سر و صورت و چشم و دست و بازویش را بان پیچی کرده بودند از سدویش میشد شد حد زد که جوان است وگرنه این آدم که مثل مومیایی همه جایش را پیچیده بودند هیچ جایش پیدا نبود که بشود سنش را حد زد فقط یکی از چشمها و سوراخ دهانش بان پیچین نشده بود روی تخت دم در هم بعد از ظهر بیماری میانسال را خوابانده بودند جوان بان پیچی شده و نالان به بیمار میانسال که تازه آورده بودندش رو کرد و گفت خدا بد نده عمو جان بعد نبینی خیلی ممنون خدا به تو هم بد نده سایت کم نشم اونجان از سه روز قبل که روی این تخت خوابیدم دعا میکنم و از خدا میخوام که یه بنده با سوادشو بفرسته پیشم سواد داری هم جان؟ ای یه کور سوادی دارم چطور مگه؟ خدا تو رو اینجا فرستاده؟ من اینجا بدبخ شدم امو جان و خونم و شیکستن هم خورد و خاک شیرم کردن اموجان جوان که از صدایش پیدا بود دارد گریه می کند ناله کنن عرف می واسم یه نامه می نویسی یه نامه بنویس تا به هم شهریام خبر بدم که تو چه وضیعتیم بگم که دیگه هیچی واسم نمونده دیگه هیچ آدمی نمیره بیا این پاکت اینم کاغذ آماده کردم بفرما باشه می نویسم میان سال کاغذ و پاکت را از دست جوان گرفت گذاشت روی کماد از جیب پیجامهش خودکار درآورد. کاغذ را به دست گرفت یک تک مقبارا هم کرد زیر دستی و آمادهی نوشتن شد بگو تا بنویسم جوان بغزش را گورت داد و شروع کرد به گفتن. برسد به خدمت بسیار محترم توپال عمر افندی برادر عزیزتر از جانم. بیمار میانسال هر چه جوان میگفت مینوشت. امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشید. لبتان خندان و دماغتان چاق باشد. اگر از احوال ما جویا باشید ملالی نیست. جاز دوریش شما بیماری میان گفت آفرین چه خوب بلدی نامه بنویسی جوان گفت اول و آخر نامه رو بلدم اموشن اون وقتا توی ده بودم از بس به نامه هایی که توی قهوه خونه میخوندن گوش میدادم از بر شدم اما وسط نامه سخت اموشن یعنی از اینجا به بعدش بیمار میان سال که کنج کاف شده بود بداند چه بر سر جوان هم اتاقیش آمده پرسید؟ از اینجا به بعدش واسه چی سخته؟ جوان گفت خب سخته دیگه چون که وسط نامه همه با همدیگه فرق داره هیچکس مثل اون یکی نمی نویسه من اگه اتفاقایی که سرم اومده واسه تعریف کنم تو میتونی توی نامه بنویسی؟ البته که میتونم تعریف کن ببینم جوان شروع کرد به تعریف کردن وقت سربازیم شده ام اگه قسمت باشه سال دیگه میرم سربازی پارسال توی دهمون از همسن و سالام اونایی که رفته بودن سربازی میگفتن اگه پول داشته باشی توی سربازی خوش میگذره اما اگه پول نداشته باشی پدرت در میاد فهمیدم که برای انجام دادن خدمت نظام بایست پول داشته باشن واسه خریدن سیگار و خورد و خوراک برای همین با خودم گفتم بهتر قبل از سربازی برم استانبول یه کاری پیدا کنم. یه مدت کار کنم و پول جمع کنم. خلاصه پاشدم اومدم استانبول یک کاغذی داشتم. روش نشونی همشهریامونو نوشته بودن. این کاغذ رو به با آدم باسواد با سواد نشون می دادم و راه و می پرسیدم. یه قهوه خونه هست. همشهری های ما اونجا جمع میشن نشونی اون قهوه خونه رو هم می پرسیدم. خلاصه، پرسون پرسون اومدم رسیدم به یه میدون نحسی که بعدن توی کلانتری فهمیدم اسمش میدون تقسیمه توی میدون داشتم رو که روش آدرس نوشته بود به این و اون نشون میدادم که یه دفعه چشمت روزه بد نبینه میدون پر آدم شد، نمیدونی چه جمعیتی بود انگاری جمعیت هزار تا ده مثل ده ما یه دفعه ریخ اونجا خواستم خودمو از لای جمعیت بکشم بیرون ولی مگه میشد. اون وسط گیر کرده و مونده بودم. خیلی زور زدم ولی نتونستم واسه خودم راه باز کنم. چون از این ور اونور هل میدادن منم افتادم توی سیل جمعیت. کشون کشون اومدم تا رسیدم به یه جایی که یه مرده رفته بود روی بلندی و داد و فریاد میکرد. از بس شلوغ بود نمیشد فهمید چی میگه. ولی هر حرفی که از دهنش در میومد جمعیت واسهش دست میزد و زنده باد میگفت یه دفعه نفهمیدم چی شد که جمعیت افتاد به تقلا هر کسی یه طرفی فرار میکرد انگاری از ترس جونشون فرار میکردن معلوم نبود کی دنبال میکنه کی فرار میکنه بلبشویی شده بود چون از پشت سر حلم میدادن منم با اونها شروع کردم به دویدن اما چون چند روز بود چیزی نخورده بودم و خیلی هم خسته بودم نتونستم پا به پاشون برم دیگه نمیدونم سکندری خوردم یا یه بیشرفی از عقب حالم داد خلاصه خوردم زمین و هم اونجا ولو شدم هم اونایی که فرار میکردن هم اونایی که دنبالشون میکردن از روم رد میشدن یعنی سر و بدن و دست و پا و همه جمع لگت میکردن و میگذشتن مونده بودم روی زمین خونین و مالی. وقتی همه لحو درباداغونم و هم کردن و رفتن به هر زور و زحمتی بود سر پا بایستدن بعد دیدم یه جمعیتی چوب و چموق و زنجیر به دست داره به طرف من چشاشون شده بود کاسی خون دهنا کف کرده به گرگ گرسنه میموندن با خودم گفتم پس چند دقیقه پیش جمعیتی که من له کرد و رفت از ترس اینا فرار میکرده چهار نفر از اونهایی که جلو چشاشون خون گرفته بود و دهناشون کف کرده بود منو دوره کردن یکیشون فریاد زد بیاین یکی از خائنا و بیناموسا رو گرفتیم هرکی ناموسش و غیرتش و زیر پا نزاشته بزنه تو سرش اون همه آدم با چوب و چماق ریختن رو سرم همینجور میزدن هرچی التماس میکردم و میگفتم نزنین آقایون من قریبم آخه اومدم توی این ولایت استانبول کار پیدا کنم نزنین دیگه التماستون میکنم فایده نداشت جلو چشاشون و خون گرفته بود حرف حالیشون نبود اونقدر زدن که داشتم از حال میرفتم نمیدونم چطور شد یکی از بینشون با وجدان اصاب در اومد و گفت یه دقیقه وایسین ببینم بذارین اول ببینیم تو دلش چی میگذره بعد از من پرسید بگو ببینم چپی یا راستی نمیدونستم چپی یا راستی هنی چی مونده بودم چی بگم که خوششون بیاد و ولم کنن با خودم گفتم الله وقتا که یکیشون میگم شاید درست در بیاد و جونم خلاص بشه برای همین گفتم این چه سالیه خدا رو شکر هممون چپیم. تا این حرف از دهنم در اومد، یکی از چوماقا رفت بالا و تاش اومد پایین دنیا جلو چشم تیر اگر او تار شد اگه خودم و به مردن نمیزدم و زمین نمیافتادم حتما میکشتنم یکیشون گفت سقط شد بیناموز خدا رو شکر یکی دیگهشونو سقط کردیم بعد نفری یه تفرو صورت صورتم انداختن و رفتن جمعیت که رفت و برم خلوت شد یواش یواش پاک شدم اما بعد از اون همه کتکی که خورده بودم نایه راه رفتن نداشتم همونجور که داشتم کشون کشون و لنگون لنگون میرفتم به یه جمعیت دیگه رسیدم اینها هم منو دوره کردن و پرسیدن چپی یا راستی؟ گفته بودم چپییم و اون همه کتک خورده بودم عمرن اگه میگفتم چپیم واسه اینکه از دستشون خلاص بشم گفتم خدا رو هزار مرتبه شکر راستیم تا اینو گفتم ریختن رو سرم حالا نزن که ای بزن هی خدا نمیدونستم چی بگم تا از کتک خوردن نجات پیدا کنم. اما خدا پدرشونو بیا مرزه اینها مثل قبلی ها بی انصاف نبودن اگه کسی در میرفت دنبالش نمی منم در رفتم و جونمو نجات دادم سر تو درد نیارم گفتم راستیم کتکم زدن گفتم چپیم بازم کتکم هم زدن. یکی اون زد، یکی این. منم دیگه از حال رفتم. نمیدونم چند وقت رو زمین افتاده بودم که دیدم یکی داره به هم میزنه. چه وا کردم دیدم بازم یه عده چماغ به دست با چشای از حدق در اومده دارن نگام میکنن. با خودم گفتم خدایا خدافتا یه کلمه سر زبون این بنده غریبت بیار تا کتک نخورده جونشو نجات بده. بعد برگشتم به اونایی که بالا سرم وایسده بودن گفتم هنوز سربازی نرفتم برادر ما دهاتیم چیزی یادمون ندادن و راست خودمونو بلد نیستیم چند تاشون یقم گرفتن و پرسیدن پس چی ای؟ آها این شو سوال بپرس چی منم بگم گفتم عملم تا این حرف دهنم درونت گفتن وای عملی ها؟ پس کارگری یعنی چپی بعد از چپا راست شروع کردن بزدن. حالا نزن که بزن. در دربا داغون که بودم دربا داغون تر شدم. جون شیری اموجان خیلی شیری. من از ترس جونم. یه جوری خودمو خلاص کردم و رفتم چپیدم توی مغازهی که اون نزدیکی بود. اومدن جمع شدن جلوی در مغازه. صاحب مغازه التماس می و میگفت داداش. جون من برو بیرون وگرنه مغازمو خراب می کنن. اگه بیرون نمی رفتم مغازه رو روی سر صاحبش خراب می‌کردن اگه بیرون می رفتم تیکه بزرگم گوشم بود درو سدم به درگاه از مغازه پریدم بیرون و ده در رو. اون همه جمعیت افتاد پشت سرم جمعیت که میگم فکر نکن علکی میگم عین بهمن هرچی جلوتر می اومد بزرگتر میشد کل آدمای استانبول افتاده بودن دنبالم میگن اون که فرار میکنه، از اون که دنبالش کرده می میدوه حرف درستی میدونی چرا؟ چون اون که فرار میکنه از ترس جونشه منم همچی میدویدم عین بز کوهی با خودم میگفتم ما واسه کار کردن اومدیم به این ولایت استانبول یا واسه کتک خوردن خلاصه سر تو درد نیارم امون جان همینجور که داشتم میدویدم یه دفعه چشمم خورد به یه تابلو که روش نوشته بود کلان تری. با خودم گفتم دیگه خلاص شدم دیگه نجات پیدا کردم. سری رفتم توی کلانتری. هنوز خودم رو پیدا نکرده بودم که یکی از پلیس ها داد زد. پسر تو جلو چشم همه گفته ای من چپی هماره؟ بعد یه لگت گذاشت تو آبگاه گفتم. اصلا همچی چیزی رو قبول نمی کنم. به زور کتک مجبورم کردن بگم. پلیس گفت. من گوشم از یه حرفا پره. بعد شروع کرد به مشت لگت زدم. هر دفع هم که میزد می بگو چفی؟ نه بابا نیستم من کیم که چپی باشم آها پس میخوای چپی باشی خواهش میکنم بگو پسر چپی؟ دیگه طاقت نیفردم گریه کنان گفتم برادرا بزرگترم از سرم فرداریم نه چپیم نه راستی شما هرچی هستین منم هم همونم این حرف را که زدم یکی که به نظر میومد فرمانده بقیه از گفت واisted. الان میفهمم که این یارو چپیه یا نه. چپیها نمیتونن این سالو و دروغکی جواب بدن از من پرسید. بگو ببینم ناظم حکمت چه آدمیه. نظرت دربارش چیه؟ اون آدمی که میگفت حتی اسمش رو هم نشنیده بودم. اگه میگفتم نمیشناسمش، اون وقت از کسایی در میومد که باید میشناختمش کارم زار بود. میگرفتنم زیر مشت و لگد خودمو سپردم به غذا و قدر با خودم گفتم آدمی که میپرسه حتما از كله های مملکته واسه همین گفتم خدا سایش رو از سرمون کم نکنه روی سرمون جا داره تا وقتی دنیا هست اسم اونم پاینده باشه مرد خیلی خوبیه مرد بزرگیه. این رو که گفتم توی چشمم انگار رد و برق زد همچی کتکم زدن که از هوش رفتم چشممو که باز کردم دیدم توی این مریض خونم همونجان اصل خونم هم خورد و خاک شیر شده نمیدونم اصل خونامو میتونن مثل قبلش سر جاش بذارن و جفت و جور کنن یا نه چون نمیدونم پام کجاست دستم کجاست نمیتونم دست و پامو سر جای قبلش پیدا کنم این بلا اومد سرم همونجان اینا را توی نامه بنویسم همونجان اینم بنویس که زود واسم خرج راه و لباس بفرستن و منو از این استانبول خراب شده نجات بدن آخر نامه هم بنویس باقی بقای شما دست بزرگترها رو میبوسم به امید دیدار خدا حافظ